بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائس كتابة فرائس فرائس جمع فريزه هاس وفريزه بمعنى ان مقدار ونسيبك مشخص هاس برايه وارس علم ميراسو فرائزهم بيش ميجد قال بعلم كتابة ايرس يا كتابة فرائس الارز فل الاسلام یا الفرائزا بعدا یک مقدمه قشنگی رو در پاورقی آورده از اونجا که این مسائل اونجا ذکر نکرده تو خودمت با هم اینا رو فارسی فقط من میگم میگه ترکه ترکه اون چیزی هست که میت اونو ترک میکنه چی مال باشه چی حقوق و این حقوق چی مالی باشه چی غیر مالی بعد میگه حقوقی که متعلق به ترکه میت هستن متعلق به آنچه که میت اونا رو گذاشته چهار چیز هستند و به ترتیب زیر هستند یک میگه اولین کاری که انجام میگیره با ترکه میت همینه که کفن میشه و آماده میشه و این بر بقیه حقوق مقدمه دو دومین کاری که انجام میگیره از ترکه دینهای میت پرداخت میشه و در این دینها آورده که دیون الله مانند زکات و ها اینا مقدم هستند میگه بر دیون بندگان مثلا اگر زکاتی هم برگردنش بوده و وامی مال انسانی برش هم بوده میگه اون زکات که دین الله مقدم بر زکات مردم نزد شافعیه اما حنفیه میگویند که دیونه الله با موت ساقت میشند مگر زمان که خود برسه تبرعن بیاند اونو پرداخت کنن یا میت وصیت کرده باش خب پس یک آماده کردن و کفن و آماده سازی میت دو پرداخت دیون میت سه تنفیذ وصیت المیت اجرا کردن وصیت میت البته از سلس باقی یعنی بعد از این که دیناش رو دادند چیزی که باقی موند از اون باقی مانده اگر وصیتی کرده وصیتش اجرا میشه تا یک سوم مال بیشتر از یک سوم دیگه اجرا نمیشه پس سفومین گام اینه که یا کار اینه که وصیت میت از یک سوم باقی مانده اجرا میشه و چهار تقسیم مالی هست که بعد از این کارها باقی میمونه طبقه سهمی که دارند و شرایط میراث هم سه چیز هستند شرایط ارس بردن چند چیز هستند یکی اینکه اون محرس فوت بکنه یا حقیقتاً یا اینکه گم بشه و حاکم بیاد حکم بده که این دیگه الان جز مردگان خلاصه مفقوده بعد از چند سال که مثلا اومد حاکم حکم داد اینجا حکمان مرده پس اولین شرط میرس که طرف ارس ببره موت مورسه چه حکمان چه حقیقتن دومیش حیات وارسه باید مورس که بمیره تا بعد از او وارث زنده باشه. وارث چه باشه؟ زنده باشه. زنده باشه. حالا این زنده بودنش اگر حکم هم باشه، سجینی. پس شرط اول موت وارث، شرط بعدی زنده بودن وارث و شرط سوم مانعی از موانع ارث نباشه این ما در میراث داریم دیگه سه تا مانع ها یک بردگی کسی برده باشه ارث نمیبره ازش ارث نمیبره دو قتل عمد البته این اختلافی عمد باشه یا خطایی باشه خلاصه دو قتل مطلق بگیم بهتره مم. یعنی قاتل از مقتولش ارث نمیبره سه اختلاف دین یکی مسلمان باشه اون یکی دیگه کافر از هم دیگه ارث نمیبرن خب این مقدمه کوچه بکو آورده بود خودش در پاورگی میگه والدی ترور به ناس شیان. اون اسبابی که مردم به وسیلهشون ارس میبرند میگه دو چیز هستن. یکی نسبه و دیگری سببه. یکی نسارد یعنی از راه نسب انسان از هم دیگه ارث میبره مانند فرزند از پدرش ارث میبره پدر از فرزند ارث میبره پدر بزرگ از نوه ارث میگیره این نسبه این چه دو سبب نکاح شوهر از همسرش زن از شوهر ارث میبره خودش دیگه توضیح میده اینا رو میگه فن نسبو الابوتو و وما و ما یه نسب پدر بودن فرزند بودنی و آنچه که از اینها متفره میشه شاخه که از اینها فره که اینها دارند فرزند هرچه برای پایین پدر برادران پدر برادران میت الی آخر خلاص خودش توضیح میده اینا رو واضح میکنه اونجا دیگه و سبب و و سبب هم دو چیز هستند که انسان با سبب ارث میبره خودش چند بر چند نوعه ام. یکی ولای، یکی نکاح. نکاح زن از شوهرش ارث میبره شوهر از زنش عرض میبره ولی اینه که سید میاد بردش رو آزاد میکنه آ؟ ولاش میشه مال همین معتق همین آزاد کننده والله یا کسی دیگه آزادش میکنه یا کسی دیگه میاد برده رو چیکار میکنه خلاصه بین آزاد کننده و آزاد شده والله هست و اقص میبره اون آزاد کننده ازش والوارثون من الرجال عشاره مردانی که وارث هستند یا ارثبران از مردان ده تا هستند ارس بران از میان مردان در میان مردان چند تا هستند ابن پسر ارث بره ابن الابن پسر پسر و انصفل و هرچی پاینتر بره اگر بلو این که چهارم باشه خلاصه پسر پسر هر چقدر پایین بره چکار میکنه میکنه؟ والعب پدر عرص میبره والجد پدر بزرگ و این عالا و بالاتر بره ها؟ پدر بزرگ سفو مگزین ده باشه چهارم مگزین ده باشه در این وسط کسی نواش ولی تو اون شراحات شو بعدن میاره فعلا ما بدونیم که ارث براکی هستن از میان مردان پسر پسر پسر هرچی پایین تر بره پدر پدر بزرگ هرچی بالاتر بره والاخ و ابن الاخ و این نزل برادر پسر برادر و هرچی پایین تر بره یعنی پسر پسر برادر و این شکل والعم و ابن العم و این بعد پسر امو و چی دورتر بره یعنی پسر امو به این شکل و زوج، شوهر و مولا نعمتی و آزاد کننده مرد مولا النعمة یعنی معتق یعنی چی؟ یعنی مردی اومده کسی رو بردی رو آزاد کرده ازش ارسمی میبره و ملای اسقطو من هم ثلاثه از این ده گروهی که گفت سه نفرشون از ارس بردن هرگز ساقط نمیشند منظور هرگز ساقط نمیشند یعنی کسی نمیتونه اینا رو ساقط بکنه اون موانع بماند اون موانع داستانشون فرق میکنه یعنی اختلاف دین رق قتل اون داستانش جدای بله یعنی اگر موانعی نبودند این ستا اصلا از ارث محروم نمیشه یکی پدره یکی پسره یکی شوهر از میان میراس بران مرد این سه نفر ساقط نمیشن برادرها ساقط میشن مثلا میت خودش پدر داشته باشه دیگه برادرای میت میرس نمی ارث نمیبرند گیرن پسر داشته باشه برادرش ارث نمیبرند اما این ستا پر ساقت نمشند. این ستا ساقت و من النساء سبعون زنان ارس برنده هفت نفر هستند یک البنت دختر و بنت الابن دختر پسر شخصی مرده پسری داشته اون پسر مرده و یک دختر داره دخترش چی میبره؟ حال دختر داره چی کی باشه چی مهم نیست. مهم اینه که دختر داره ارس میبره پس دختر ارس میبره دختر پسر ارس میبره والام مادر ارس میبره والجده مادر بزرگ والاخت خوهر والزوجه زن و مولات النعمه و آزاد کننده زن معتقه یعنی زنی که بردی آزاد کرده میشه میگن مولات النعمه و ملای از قطب الهنده ثلاثون افرادی که از این زن زنان ساقط نمیشن اگر زنده باشند یعنی ارس میبرند ساقط نمیشن کسی اونا رو ساقط نمی از میان میراس بران از میان مردان سه نفر بودند که هیچ میراسبری اونا رو ساقید نمیکرد. اینجا هم سه تا زن هستند که میراسبری اینا رو ساقید نمی کرد. یکی مادره مادر که زنده باشه هیچ میراسبری اونا رو ساقید نمی دختر و زوجه و زن اینا رو کسی ساقید سهمشون کمتر میشه که بعدن میخونیم مثلا از یک فرزن مادر میره بی... از یک سوم میره به یک شیشون ولی ساقت نمیشن کاملا ساقت خب هم اربعت و اصناف و اینها یعنی من بران بران بچار سلف تقسیم میشن میراس بران مردارو گفت اونایی که اسم میبرند زنا رو گفت ولی اینا شیوه ارث بردنشون یکی نیستا بعضی از راه فرض میبرند بعضی از راه عصب میبرند و که هر چهار موردو توضیح میده فقط من این نقطه رو توضیح میدم اینجا کار کرد فرض اونیه که سهمش تعیین شده مثلا دختر یک دو میبره یا دو سه هم میبره خلاصه سهمش تعیین شده ولی پسر تعیین نشده بشی میگن احصابه بشی میگن چی؟ پس اینایی که ارث میبرند اینا رو نام برد از میان زنان و مردان که ده نفر رو از زنان مردان نام برد و هفتو از زنان میگی اینا بر چهار نوان چهار سنفاند كو جرسيدين خب بسين بله احدها الصنف اول يعني هيك ازون أسناف من يرث بالفرض وحده وان جروحك فقط از الراه فرض ارث ميبر يعني فقط از الراه سهمي كي مشخص شده نصيبي كي براش شده راه ارث ميبره وهم خمسه وان جروح يعني ان سنف باني نفران الام مادر بعدن سهميهاشون رو میگه در بحث الفروز سهمیه اینا رو خودش میگه پس اینایی که از راه فرض ارث میبرن از ار راه سهمیه ارث میبرن سهمیه تعیین شده اینا پنج گروهند یک مادر جد دو مادر بزرگ و ولد الام سه فرزند مادر اگه مثلا یه مگیتی مرد فرزند مادر داشت یعنی مادرش فرزند داشت یعنی برادر و خواهر مادری بودن فقط براش اینا از راه فرض ارث میبرند و و زوج شوهر و زوج و زن اینها این پنج نفر فقط از راه چه ارث میبرند فرز یعنی از راه عصبه اینا ارث نمیبرند و ثانی سنف دوم من يرث به تعصیب وحدهو اونای هستن که فقط از راه عصبه ارث میبرن از راه چی؟ عصبگی و هون سبعتون و اینا هفت نفرن عصبگی دیگه چیه؟ بله ما داریم دو گروه از خب چار گروه آورده که توزیشون ده یک یک الراه فرض میبره یا الراه عصبه یا الراه فرض و عصبه و اینا رو که توزی میدالن مثلا شخصی فوت کرده یک پسر داره و یک مادر اینجا مادر ار راه چه عرض میبره؟ از راه فرض پسر ار راه عصبگی چه کار میکنن اینجا؟ اونی که از راه فرض ارث میبره سهمش تعین شده همون سهمی رو که شریعت برشتن کرده بهش میدن باقی مانده رو به پسر میدن میگن راه عصب گیرس خود. یعنی سهمیش تعین نشد هرچی باقی موند هرچی چی؟ باقی. باله پس اونایی که فقط راه عصب گیرس میبرن هفت نفرن البنون پسران این پسران میت و بنوهم پسران پسران میت وال برادران میت و بنوهم و فرزندان این برادران والأعمام وبنوهم أمو هذا فرزاً دانشون والمعطق ومولايا آزاد كنندي مولايا تي والثالث سوفو من سنف من يرث بالفرض طارة وبالتعصيب أخرى قلوها سوفونا يا حسن كي گاهی با فرض ارس میبرند و گاهی موقع از راه عصبگی و هم اربعت و اربعتون و اینایی که از این سنف هستند یعنی گاهی با فرض و گاهی از راه عصب بودند اینا چار گروه چار نفرند سنف سوم که از راه فرض ارس میبرند، گاهی و گاهی موقع عصبه قرار می گیرند و ارث می برند اینا چهار گروه هن. البنات دختره دختر یک شخصی مرده یک دختر داره و پدر خب دختر اینجا سهم می بره ولی شخصی مرده یک دختر داره و یک پسر پسره میاد خواهرش چیکار میکنه از راه عصبه عصبش میکنه دیگه اینجا از راه اه فرض ارث نمی بره راه چی بود پس اینا گاهی موقع از راه فرض می گاهی موقع از راه عصبه دختران بنات و دختران پسر والاخوات الاخوات و لیب و پدری و مادری میت مرده خواهر پدری و مادری داره خواهر شقیقه داره والأخواتو و الاخوات و و پدری اینای که تا اینجا کار نمبرد یه رس از راه فرض میگه ارث میبرند ایزن فراد نانده کرین زمانی که زکری همراشون نباشه مردی همراهشون نباشه یعنی برادر نداشته باشند یعنی زمانی که برادر و به تعصیب اذا شعرکهون نذکرون اوکان معلاخواتی جدون اوبنات و از راه اینا از راه عصبه ارث بیرن زمانی که مذکر همراهشون باشه در ارث بردن مذکر شریکشون باشه بسه شخص مرده یک خواهر داره و یک برادر اینجا از راه عصبگی ارس میبره شخص مرده یک خواهر داره و یک برادر که تفصیلات خواهد اومد بس و از راه عصبه ارس میبرن یا راه تعصیب ارس میبرن زمانی که مشارکت بکنه با این زنان مذکری اوکان ما الاخوات جدون یا زمانی که همراه خواهران پدر بزرگ وجود داشته باشه پدر بزرگ اگر وجود داشته باشه یعنی من یک شخصی مرده سه تا خواهر داره با یک پدر بزرگ آه؟ اینجا هم با این پدر بزرگ اینا چی میشند؟ روی اسبه. از روی عصب گیرس میبرند که اینو بحث جد و مال اخوه خودش یک بحث جداغونه ای هست او بنات یا بنات یا چی؟ بنات یعنی بنات هم میتونند اینا رو چکار کنند؟ عصبه کنند اونجا بهش میگن ما سه نوع عصبه داریم یکی عصبه به نفسه مثل مثلا پسر یکی عصبه به غیره مثل دختر که برادرش میاد اون رو عصبه میکنه یکی عصبه معغیره عصبه معغیر اون زنانی هستن که به وسیله یک زنی میان چی میشند؟ عصبه میشند یک یه دختر داره و خواهر. این میاد دو نارچکار میکنه؟ عصبه می‌کنه. والرابه سنفچارم من یارث بالفرضی تارتن و جمع بین الفرضی و تعصیب تعصیبی تارتن سنفچارم اونی که گاهی از راه فرض ارس می‌بره. این اون سهم یک شده و گاهی موقع بین فرض و عصبه با هم جمع میکنه. یعنی اول از راه فرض بودنش سهم خودشو بر می داره اگه بعدن پاین هم چیزیمون باز هم بهش داده میشه. و اینا فقط دو نفر پدر و پدر بزرگ پدر کلان سه حالت داره زمانی که میت فرزند مذکر داشته باشه پدر یکیشون میبره. یعنی از راه فرض عرص میبره. زمانی که دختر داشته باشه از راه فرض و عصبه ارث ارس میبره زمانی که اینا رو نداشته باشه عصبه خالیه پس سنف چهارم اونیه که از راه فرض گاهی موقع ارث میبره و گاهی موقع بین فرض و عصبگی جمع میکنه مثال شو زدی شخصی فوت کرده یک پدر داره با یک پسر اینجا پدر فقط از راه فرض فرزرس میبره یک رو بهش میدند باقی رو میبره کی؟ پسر مثال دیگه پدر شخص فوت کرده یک پدر داره با یک دختر سهم پدر میشه یک شیشم سهم دختر میشه یک دوم ولی اینجا یک دوونو که دختر برد یکی شما ک پدر بار چیزی باقی میمونه باقی مندر رو راه چی میبره؟ عصبی. پس اینا دوگرو دو نفر هستند پدر و پدر بزرگ یاریثانی به فرض مع البنینی و چه زمان از راه فرض ارث میبرن؟ ارث میبرن از راه فرض زمانی که میت همراه با فرزندان و فرزندان پسران و پسرانه میت نگیم ک فرزند چون فرزند شامل دختر و پسر میشه. پس زمانی که میت خودش پسر یا پسر پسر داشته باشه اینجا پدر و پدر بزرگ از راه فرض ارس میبرند و به تعصیب مع عدم الولد زمانی که میت ولد نداشته باشه کلا چه پسر چه دختر فرقی نمیکنه اینجا پدر و پدر بزرگ از راه تعصیب ارس میبرند و جمعانی بینهما مع البنات و بین ارس و فرض می کنند زمانی که میت فقط دختران داشته باشه دختر داشته باشه که مثالشو گفتیم و یتعصب الجد مع الاخوتی والاخوات الى ثل و در مورد پدر بزرگ یک چیز دیگه ای داره توضیح میده چون پدر, پدر و پدر بزرگ بعضی جاها با هم دیگه فرق دارند پدر بزرگ جانشین پدره پدر که نباشه پدر بزرگ ارس میبره نه؟ ولی در چند مسئله با هم فرق دارند یکی این که پدر که وجودش باشه برادران مئیت و خاهرانش ازش ارس ولی پدر بزرگ با... که باشه نه پدر بزرگ باشه اختلافیه امام ابو نیفه نومن رحمت الله علیه میگه ارس نمیبرند یعنی مثل پدر, پدر بزرگ اینا رو محجوب میکنه از میرس ارس نمیبرند ولی جمهور فقه امام شافعی رحمت الله دیگر میگند که باهم ایرس میبرد آه این نقطه داره اینجا میگه. میگه وای تعصب جد میگه می از راه عصب ایرس میبره جد پدر بزرگ همراه برادران و خواهران به یک سوم تا یک سیب. تا یکی یعنی اگر تا یک سوم مال گیرش بیاد از راه عصبگی همراه اینا ارث میبره و یو فرازوله و ثلوف نقص اما اگر کمتر از یک سوم گیرش اومد اون موقع نه از راه عصبگی ارث نمیبره یک سوم خودشو بر بعدا بعدن باقی منده چی کار میکنن؟ از راه عصبگی ارثشون تقسیم میشه حالا مثال میزنن زمانی که شخصی مرده یک پدر بزرگ داره با یک برادر اینا مالو با هم چکار میکنند؟ از راه اصبیگی اینجا پدر بزرگ ارس میدیم میدیدون چرا؟ چون با این حالت میت فقط یک برادر داره و یک پدر بزرگ اگر ما اینجا در اینجا کار پدر نصف مالو میبره چی پدر بزرگ نصف مالو میبره پس اینجا از راه چی ارسش میدیم؟ اسبی. شخصی مورد یک پدر بزرگ داره با دو تا برادر. اینجا سه نفرند یک سوممال و پدر بزرگ میبره. آ اینجا چی یک سوموم بدیم چه؟ از راه عصبگی و مقاسمه ارث ببره یکیه. ولی حالا اگر طرف شخصی مرد یک پدر بزرگ داشت با سه تا برادر اینجا اگر از راه عصبگی ارسش بدیم یه چهارم گیرش میاد یک چهارم کمتر از یک سومه. پس اینجا چیکار میکنیم؟ میگه اینجا میام یک سومه پدر بزرگ میدیم باقی رو اونا بین خودشون چکار میکنن تقسیم میکنن. پس این جمله رو دقت کن میگه وای تعصب و جد دو مال اخو تیوال اخوات. ایلا ثلث از راه عصبگی اسمی برای پدر بزرگ همراه برادران و خواهران تا یک سوم. یعنی تا زمانی که یک سوم گیرش بیاد از راه مقاسمه اسباقی چکار میکنه؟ ارسومی میبره. و یه فразوله ثلث النقص ولی تعیم میشه برایش یک سوم اگر سهمش از راه مقاسمه کمتر از یک سیوم شد اگر سهمش از راه عصبگی کمتر از باله این زمانی پیش میاد که تعداد اونها بیشتر از دو برابرش باشند <تصفيق> یعنی اگه تعدادشون بیشتر از دو برابر پدر بزرگ شد مسلمه که پدر بزرگ کمتر از یک سیوم ارس میبره اینی قاعده خیلی آسانیه که در کتابای میراث مستقل، چون این بحث اِرسک توی کتاب آورده اینجا خیلی مختصره ولی مسائل اصلی اِرسو آورده